آن اقل که در راه سعادت پویید، روزی صد بار خود تو را میگویید، دریاب تو این یکدمه وقتت که نیی، آن تره که بدربند و دیگر رویید. ماه رمزان برقت و شوال آمد، هنگام نشات و عیش و آمد، آمد گه آن که خیک ها اندر دوش، گویند که پشت پشت هم آمد. یاران موافق همه از دست شدند، در پای عجل یگانیگان یگان پست شدند، بودند به یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیش ز ما مست شدند. آنان که به کهنه و به نو در رحب کف آب و دونان موقوفند، گویند که شبلی و جنه دیم همه شبلی نولی در کرخی معروفند.